بسم الله الرحمن الرحیم امروز از حروف مقتعه شروع کرد. بحث اول فواته سوال ببینید بیست و سور در قرآن داریم که اینا با یه حروفی شروع میشند نمیدونیم چی هستند از سه حرفی شروع میشه مثل الفلامیم چهار حرفی الفلامیم را تا کاف یا عین یا یا سین کاف یا نون وانکم 20 هم داره سوره بعد از صاد بیست نظریه در موردشون گفته شده اون دی در مردشون گفته شده چمبندی این بیستتگا اینه که نمی‌دونیم چی اند برعکس جام زنه چرا داناتون کوشوار می‌شار؟ لسینی سلامت الله کنیزی از خونی در اومد یه سینی زوشبه رو سرش دستمان هم روش بود یه آدمی که بهش میگن گایی فوزود بهش گفت که روسی سینی چیه بهش گفت که قرار باشه شما بدونید دیگه روش دستمان نمیزشتن <تصفيق> بیستاش نداره، لزو نه ندارم، تو جزوه هستش هم، تو جزوه هستش هم تو جزوه هستش ببین بین بیستا این که، مثلا یکی از چونه که اسامی خداوندند، مثلا کاف یعنی کافی، مثلا یه علی حکیم حروفشون بیشترین استفاده را در اون سوره برده مثلا یا وسین در سوری یاسی نسبت به بقیه 26 حرف علف بای دیگه تعدادشون بیشترین نصف حروف هجایی هست نصف حروف علف بایست این 20 نقطه را کنارم بذارید 14 حرف علف بایست تکرار شده از این دست مطالب این همه خوبن هم. نمیخوام بگیم بدن ولی لا یعنی من الحقه شیعا لا یسمن و یعنی کافی نیستن انسان رو قانع کنند بهترین توجیه، همون توجیه که گفته بشه اینا رموزی هستن و این خدا رو پیغمبرش و کسی از این رموز متلف نیست. حالا اساساً برای چی اومدن ممکنه من شما آنها بشین خودمون یه تحلیلی نسبت بهشون داشته باشیم. ببینید حرف از اینجور بگم خدمت قرآن کریم قرآن کتاب مکتوب نیست کتاب شفاهیه درسته؟ یعنی مثل تورات نیست که رزت موسا لوحی را ارائه بده به مردم بگه این لوح از نایی خدا است و همین جوری هم باشه مردم نگاه بکنن بگن لوه بگه با خط سبزی روش نوشته و این همینه که از نایی خدا بند اومده اینجور نیست قرآن قرآن یک کتاب مکت... شفاهی است پیامبر به وسیله جبرائیل جبرائیل از خدا میگرفت پیامبر شفاهی را به زبان بیانش میکرد و دیگه تا به پای درسته؟ به هر حال در خطابات مکتوب با خطابات شفایی فرقش اینه راز و رمزهایی در خطابات شفاهی وجود داره که قابل تصویر در خطابات مکتوب نیست. من الان با شما حرف میزنم. حرف من متوجه میشید یا نه؟ ها؟ میشید؟ چرا میگی بله؟ اون سوال پرسیدن درسته؟ ولی در مکتوب همچی چیزی وجود نداره شما وقتی که شفایی داری حرف میزنی نقطه میذارید ویرگول میذارید نقطه ویرگول هم میذارید سرخط میذارید علامات تحجاب میذارید همه در شفایی هستش درسته؟ ولی در مکتوب هم چیزی وجود نداره در خطابات شفاهی امکان خطا لغزش بسیار بسیار کمتر میشه بیشتر نسبت به مکتوب کمتر میشه خطاهای بله خطای لفظی خطای شنیداری خطای فهمی خطای مهمشون به نهایت کم میشه درسته چون شما به مزه که چیز رو متاجه نشید میگید آقا متاجه نشویم دوباره تکرارش کن وقتی خطابو مکتوب چکار کنی مثلا یه حرفی رو اشتباه چاپ کرده چیکارش کنید به کی بگید ماتنش نیستش گویندهش نیست. ارتباط روحانی گیرنده و گوینده در خطاب شفاهی بسیار بیشتره. درسته؟ با چه حرف میزنه؟ با زبان همش حرف میزنن با چش، با گوش، با دست، با پا با همه چیز حرف میزنن. اینا هم تأثیر گذاره قرآن کریم از نوع خطاب دومه باید حاوی رمز و رموز چون ارز کردم پس ساده است فهمش برای مخاطب راحت تره درسته خب باید برای کسی که اولین مخاطبه پیامبر اولین مخاطبه قرآن کریمه باید برای اوی از یک رموزی استفاده کنه و دیگه هیچ جای رمزی در مطلب در کتاب در جمله در عباره در باجه وجود نداره. شاید خداوند به خاطر این جهتی که با پیامبر خودش رمزه هایی را بیان کرده باشه از این, این حرف ها استفاده کرده باشه و نتیجه همون شد که رموزیست بین خالق و مخلوق بین مرسل و مرسل و جز اون دو کسی از این رموز آگاهی نداره و هرچی گفته شود رجمن بالغیبه تیر در تاریکی انداختنه اما اون چه گفته شده است با اسلوب سازگار نیست یعنی رفتن شماره کردن دیدن یاوسین در سوری یاسی نسبت به نسبت حجمی با سایر سوره ها بیشتر نیست الف، لام، میم در سوری بقره با توجه به حجمش نسبت به سوری توحید بیشتر نیست کمتره با توجه به حجم ها سوری توحید داده یه سطر سوری بغره دو جوز دو و نیمه درسته اما باز حساب کنید میانگین سنجی بکنید باز هم چیزی وجود نداره. یا بقیه موارد که گفته شده است که نصف حروف علف باز بازم نمیشه گفت حروف الفا چند تاست عربی احسنتون باز همین جوریه پس چهارده و نیم شد در حال گینام چارده تا هستن دو نفلن یا بعضی ها کردن گفتن نصف حروف اه اه صفات اصلی تجویده یعنی نصف رخوها، ها نصف مشدده ها نصف مصالیه ها نصف مصفله ها نصف مطبقه ها نصف منفته ها اینا تو این بیسون حرف وجود داره باز میبینید بعضی از غروف هستن نش شدیده هستن نه رخابه هستن اون غروف متوسطه درسته؟ و باز هر کدوم از این راه ها شما پیش برید یک درد سرایی داری با توجه به؟ مخموم و مهنی که شما استی که مقصر کردیم چه نفیل دارید بشه؟ چه چه؟ وقتی که رمزی بین خدا رستیش باشه بله پاس خوف لزومی نداره کتابی که برای هده هده از اول تا آخرش برای هده بشهر باشه لزومی نداره کلمه کلمهش برای هده بشهر باشه ببین؟ عقلانی هم هست. بخشی از آیات قرآن در مورد زن هاست خوب من و شما زنی حالا بگید چه ویژگی شماس مک کتاب کتاب الهیات نیست این آیه بلدرد من نمیخوره بخشی از آیه در مورد ما و عبیده خب من و شما عبدکنیزیم ها نه لازم نداره که بگید وقتی که آیه وقتی کتابی برای هدایت بشر تک تک این کلمات و واژه‌ها برای هدایت بشر باشه بعضی‌ها برای پیرمرداست شما پیرمردید بعضی های برای جواناست خب کسی که جوانی چیکار بکنه لازم بعضی های در مورد جنگ فعلا در حال سلحیم چه چکار کنیم آیه برای ما اثر هدایتی داره بعضی آیه اصلا انحصالی یا نساء نبی اصلا کسی الان کسی زن پیغمبره بعد از ارتعال پیانبر این آیه به در چی میخوره یا نساء نبی این زن پیامبر؟ زن پیانبری وجود نداره تو جرز ماستی؟ لزومی نداره وقتی میگن کتاب برای اینه یعنی این کتاب برای این بیان شده وز شده لزومی نداره تک تک واجه ها و عبارات و کلماتش صرفا برای بیان همون مقصود استفاده شده باشه درسته؟ بعضی آیا در مورد ارسه اون مو کسی که ارس نمیبره آیا اثار حدایتی نداره برای من ما که چیزه به ما نرسید؟ بند خدایی میگفت می گذشتگانم جز مریضی ها چیزی به ارز من نرسیده مریضی های جنتیکی ارز به حضور دارم ارز بهش نرسیده ارز بهش نمیرسن آیات ارز رو چکارش کنه و خیلی از آیات قرآن من یک جزبه ای دارم تحت عنوان آیات زندگی آیات زندگی 630 آیات که مال همه است به درد همه میخونه ما از یهیک یعنی دهم مجموعه آیات قرآن شش هزار دویست سیو شش آیه کجا ششصدو سی آیه کجا کل این آیاتی که این یعنی بعضی هستن میگن پاشو بیشی این آیات این آیات ششصدو سی تاست بعضی توصیفیه سیفیه میکنه یه چیزی را یک جنگی را یک را نمیخوام بگم اون اثر دلتن نداره اونم مالو زمینهای میسازه مت مستقیم بر مورد مسئله نیستم. این از حروف مقتعه شما یه زمتی بکشید یک کتاب است به اسم بیان روان آره مفصل حروف مقتعه را توزید داده مفصل همه ای که مفصلان مختلف بیان کردن در مورد این حروف بیان شد دو تفسیر همین تفاصیل آلا این چون همه را جمع کرده ارز میکنه تفسیر نمونه سوره بقره زیل الفلامیم آقای مکاره کلیه این, کلی این موارد را جمع کردن و آخرش هم میگه این موارد هیچ کدومشون به هر حال چنگی به دل نمیزنن موردی که من میگم بهتره مورد خود.